112 پدر من شاه کشور در سن 70 سالگی بدرود زندگی گفت و من به جای او به تخت شاهی نشستم و با دخترعموی خود ازدواج کردم و هردم از امتیازات زندگی سلطنتی برخوردار شدیم ما هر دو صمیمانه یکدیگر را دوست داشتیم و به یکدیگر عشق می‌ورزیدیم زندگی پرسعادتی داشتیم که مدت پنج سال با خوشنودی و شادی گذشت بلی از سال پنجم حس کردم که همسرم علاقهی به من ندارد در یکی از چبهای که دخترم اویم به گرما رفته بود پس از خوردن شام خوابم آمد و در همان حال روی موب دراز کشیدم و چشمانم را بسته بودم دو ندیمه همسرم که هر کنم با باد بزنی مرا باد می زدند تا از گرما و مگس مرا محفوظ نگه دارند با یکدیگر به صحبت پرداختند ولی من که هنوز بیدار بودم، و فقط چشمانم را بسته بودم شنیدم که آنها چنین گفتند آیا ملکه در رفتار خود نسبت به شاه به این جوانی و خوش دچار اشتباه نگردیده است؟ دیگری پاسخ داد: بی تردید ملکه دوچار اشتباه است من که حقیقتا سر در آورم چرا او چنین رفتاری پیش گرفته است و هر شب از قصر خارج می شود و شاه را در قصد خود تنها می گذارد. آیا شاه تا این درجه در بیخبری و قفلت به سر می برد؟ در اینجا ندیمه اولی گفت چطور تو انتظار دایی شاه از قیبت شبانی ملکه با خبر باشد؟ ملکه هر شب شیره گیاه دارویی به خصوصی را که بسیار خواب است به شاه می خوراند. به طوری که در اثر این دارو شاه سراسر شب را تا هنگام صبح در خواب عمیق فرو می رود و ملکه با خیال آسوده با مشوق خود تا فرار سیدن صبح به خوشگزرانی مشغول می شود و همین که می کند. ملکه به قصد باز می گردد و دوباره در بستر خود کنار پادشاه استراحت می کند و آنگاه اچه را از زیر بینی شاه می گیرد که او را بیدار میسازد اکنون سرور من حد بزنید پس از شنیدن این گفتگو چه حالی به من دست داد و از حیرت و ناباوری و تعاسف و افسوس چه تووفالین در روح و فکرم برپا پا گردید ولی خود را نگه داشتم و نشان ندادم که گفته های آنها را شنیده ام ملکه از گرما بیرون آمد و با هم شام کردیم و قبل از آن که به بستر رویم اون جام پر از همان مایه همیشگی به من تعارف کرد این همان مایه بود که هر شب قبل از خوابیدن من عادت به نوشیدن آن داشتم ولی این بار جام را گرفتم و به طوری که ملکه متوجه نشود از پنجره بیرون ریختم و بعد جام را به دهان خود نزدیک کردم و بعد آن را به ملکه دادم او خیال کرد که آن چرا که در جام بوده نوشیدم آنگاه با اتفاق هم به بستر رفتیم و پس از مدتی که مطمئن شد خوابم برده است از بستر برخاست و در حالی که لباس می پوشید با صدای بلند گفت به خواب که هرگز دیگر از خواب بیدار نشوی. این را گفت و از اتاق بیرون رفت. همین که ملکه از خوابگاه بیرون رفت من از بستر برخاستم و با سرعت لباس پوشیدم، شمشیرم را برداشتم و به دنبال او رفتم و با چنان شتاب زدگی حرکت کردم، که رخت رفته صدای پای ملکه را که در جلوی من حرکت می شنیدم من هم به نرمی و ملایمت گام برمی داشتم که مبادا متوجه شود من او را دنبال می کنم. ملکه از چندین در بزرگ حیات عبور کرد و در مقابل هر کدام از آنها کلمات سهرامیزی گفت و درها باز می شدند. من از آن کلمات چیزی نفهمیدم اما دنبال ملکه من هم وارد می شدم. آخرین در بزرگ دری بود که به باقی وارد می شد. و ملکه وارد آن باک گردید من در گوشهی خود را پنهان کردم تا مبادا ملکه مرا رو ببیند همین که ملکه از پت زمین عبور کرد برگشت و پشت سر خود را نگاه کرد تا مبادا کسی او را دنبال کرده باشد آنگاه وارد بیشهی شد و از آنجا به ای وارد شد که اطراف آن را نرده های چوبی پوشانده بود من از راه دیگر تقییب خود را دنبال کردم و خودم را به نزدیکی او رساندم که مشغول صحبت با مردی بود شنیدم که ملکی می گفت من سزاوار این همه سرزنش تو نیستم که مرا به جهت سهل مورد تو بیخ قرار دهی تو خوب می که چه امری مانع من است ولی چنانچه این همه اشق و فداکاری که در راه تو نشان دادم کافی نباشد حاضرم بیش از پیش عشق خود را به تو ثابت کافی است که تو فقط سرما بدهی دو قدرت مرا آگاهی و اگر تو اراده کنی من تا قبل از طلوع آفتاب این شهر بزرگ و این قصر باشکوه را تبدیل به ای خواهم کرد که فقط جایگاه گردها و جغدها و زاغ‌ها شود آیا می خواهی که تمام سنگهای مرمر پارچه و زیبایی این قصر را که به این استحکام و قشنگی در این قصر به رفته است آنچنان جابجا کنم که تا آن سوی کوه‌های قفقاز پرتاب شوند فقط کافی است که تو اراده کنی و یک کلمه بگویی بکن همین که سخنان ملک پایان یافت به اتفاق عشق خود وارد جاده دیگری شدند و از کنار من عبور کردند در این موقع من شمشیر خود را آماده نگه داشته بودم و مشوق ملک درست در کنار من در تاریکی ایستاده بود و مرا نمیدید در همین لحظه گردن او را هدف قرار دادم و ضربه محکمی بر گردنش وارد ساختم که به روی زمین افتاد و تصور کردم او را به حلاکت رساندم، به این جهت فرار را برقرار ترجیح دادم بدون آنکه مرا شناخته باشد. در این ماجرا ملکه را نکشتم، زیرا او از قبیله و تایفه خودم بود. زربهی که من برگردن مشوق ملکه وارد کردم، کاملا کشنده بود، اما ملکه با نیروی سهر و جادوی خود مانع مردن او شد و او را به حالتی درآورد آورد که کاملا مرده و نه کاملا زنده بود. اما هنگامی که از میان باغ می‌گذشتم، تا خودم را به قصد برسانم فریاد و ناله ملکه را می‌شنیدم که بسیار اندوکین بود و خوشحال بودم که ملکه را به حرکت نرساندم. وقتی به خوابگاه برگشتم یک راست وارد بستر خواب شدم و خوشحال بودم که آدم گناهکار را به مکافات عمل بدش رساندم. جوان به سلطان گفت چون صبح از خواب بیدار شدم دیدم که ملکه در کنار من در بستر افتاده است. اما ندانستم که خواب است یا بیدار. به هر حال من از جای برخواسته لباس پوشیدم و از اتاق خارج شدم. و پس از مشفلت با هیئت مشاورین خود به قصد برگشتم و ملکی را به لباس ازا دیدم. در این هنگام در حالی که ملک موهایش پریشان بود و حالتی ماتم زده و افسرده داشت به طرف من آمد. و گفت شهریار مرا ببخشید که در چنین حالت نامسایدی هستم. سه پیش آمده برایم اتفاق آمده است. ملکی مادرم به رحمت ایزدی پیوسته. پدرم در جنگی جان خود را از دست داده و برادرم در جنگ به حلاکت رسیده است. من مصیبت زده هستم و ناچارم در اندوه و ماتم انزیزان از, از دست رفته به عذاب بنشینم. من به او گفتم بسیار متأثرم و در اندوه شما خود را شریک می دانم. خدا صبر و بردباری دهد. شما را به هیچ وجه نمی سرزنش کرد. به حضرتم هر خدمتی که از من ساخته است برای شما انجام دهم. با این مصیبت بزرگی که بر تو وارد شده، اگر واکنش نشان نمی‌دادی، یه شگفتی بود و این همراه همراغ و سوزوغداز نشانه تأثر و عاطفه و سرشت نیک تو است که به پدر و مادر و برادر خود دلبستگی شدید داشته ای. امیدوارم که رفته رفته با گذشت زمان، اختیامی در اندوه و غم تو پدیدار شود. ملکه به تالار خودش رفت. و در آنجا تمام اوقات شبانه روز خود را به گریه و زاری پرداخت و مدت یک سال تمام به این منوال روزگار گذرانید. بعد از چندین ملکه از من خواهش کرد که اجازه دهم در محدوده های قصر برای خودش آرامگاهی بسازد و در آنجا ایام خود را به آورد و در آنجا گوشه‌ای تنهایی اختیار کند تا اینکه عمرش به پایان رسد و مرگ به سراغش بیاید. من هم به او اجازه دادم. ملکه هم قصر مجللی برای خودش بنا کرد و اونجا را قصر عزاداری نام نهاد همین قصری که الان می بینید هنگامی که بنای این قصر به پایان رسید ملکه مشوق خود را به این قصر آورد و همونطور که قبلا گفتم پس از زخم مهلکی که من بر گردن مشروقه ملکه وارد کردم ملکه با سحر و افسون مانه مردو شد و بعدا او را در این قصر جای داد و هر روز ظاهرا برای عزاداری به این قصر می‌آمد مشروق ملکه نه تنها با افسون و جادو علاج نگردید بلکه قادر به حرکت هم نبود و به تمام معنی ناتوان از انجام هر کاری بود و قدرت تکلم و سخن گفتن را هم از دست داده بود. هیچ آثار و علائم زندگی جز نگاه کردن در او وجود نداشت. یعنی فقط می توانست نگاه کند و مقاصد خود را با نگاه کردن بفهماند. با وجود این ملکه با دیدار مشروق را تسلی میداد. روزی دوبار بار به دیدن او میرفت و هر بار ساعتها نزد او می ماند و آنچرا که عشق کورکورانه او به او دیکته می‌کرد، بر زبانجاری می, و, زبان جاری می و با مشوق بیجان خود راز و نیاز آشغانه می‌کرد. در عین حال ملکه نمیدانست که من از ماجرا اطلاع دارم. روزی از روزها از روی کنجکاوی به قصر عزاداری رفتم و در گوشه پنهان شدم و گوش دادم تا در ملکه با, با مشوق خود چه راز و نیازی دارد؟ شنیدم می‌گوید گوید، عزیزم. بزرگترین رنج من دیدن تو در این وضع است. من هم به اندازه تو و مانند تو از این حالت رنج می برم. ولی ای جان شیرینم، آخر تو هم در مقابل این همه سخنی که من می گویم کلمه حرف بزن و مرا خوشحال کن. تا کی می خواهی خاموش باشی؟ فقط یک کلمه اکاش می توانستی. شیرین لحظات عمر من لحظه است که در حضور تو میگذرانم و در این غم بزرگ, بزرگ با تو مشارکت می کنم. من نمیتوانم از تو دور باشم من لذت دیدن تو را بر تمام جهان هستی و دنیا ترجیح می دهم با شنیدن این سخنان از ملکه که چندین بار هم با بغز سخن او را قطع کرد صبر و تحمل خود را از دست دادم به او نزدیک شدم و گفتم ای بانوی من این همه بیتابی و زاری و عزاداری کافی است اینک وقت آن است که به فکر خودت و من باشی من هم سهمی از زندگی زناشویی دارم که تو آن را کلاً فراموش کرده‌ای. ملکه پس از شنیدن سخنان من گفت: ای سرور من، تو اگر لو تو محبتی به من داری، اجازه فرما تا به گریه و زاری و بدبختی خودم ادامه دهم و آنقدر گریه کنم تا آنکه مرگ فرار صد و مرا از این ماتم بزرگ خلاصی بخشد. وقتی دیدم سخنانم بیفایده است، او را به حال خود گذاشتم و رفتم. مدت دو سال تمام ملکه هر روز به سراغ مشوق می رفت و زار زار می و همین رویه را ادامه می داد. برای بار دوم به قصر عزاداری رفتم. او را دیدم که همچنان عشق می ریزد و سخن می گوید. خود را در کنجی پنهان کردم و شنیدم که می گفت این سال است که تو یک کلمه با من حرف نزدی. تو هیچ واکنشی به این همه راج و نیاز من از خود نشان ندادی. من این همه عشق می ورزم. تو هیچ نمیگویی و توجهی به ناله ها و درد نمیکنی. نمی کنی آیا این حالت تو بر اثر است یا به خاطر بی اتنایی می باشد؟ ای آرامگاه آیا تو این عشق و شور را از او گرفته ای؟ آیا تو آن چشم های عاشقانه را که نوید عشق به من الهام می کرد و خوشی من بود از من برگردانده ای؟ نه هر نمیتوانم نمی توانم هیچ کدام از اینها را باور کنم نه هیچ کدام از اینها نمی تواند باشد. ای گور سرد. به من بگو چه مجزهی رخ داد که تو توانستی چنین گنج بیمانندی را در آغوش خود بگیری؟ در اینجا جوان گفت من باید اعتراف کنم که با شنیدن سخنان ملکه قیرتم به جوش آمد و خشف سراپای وجودم را فرا گرفت زیرا این همه و التماس و خاری و منت برای مشوقی بود که شما نمی توانید بزنید چه کسی بود؟ او هندوی سیاه پوستی بود؟ که تا این درجه مورد ستایش و محبت ملک قرار گرفته بود من در برابر این مشوق زشت و سخنان عاشقانه ملک به او از خود بیخود شدم و فریاد برآوردم ای گور سرد چرا تو این هیولای زشت را یک باره در کام خود فرو نمیبری؟ و بهتر گفته باشم چرا ملکه و مشوق او را در کام خود جای نمیدهی که به کام دل خود برسند هنوز این سخنان از دهان من خارج نشده بود که ملکه مانند ببر تیر خورده هشقن شد و از جای خود که در کنار این مرد بود برخاست و فریاد کشید ای جنایتکار تو باعث این بدبختی و روزی بوده ای تو نمیدانستی که من از اول این را میدانستم. من مدت است که آن را از تو پنهان داشتم. این دست به خونه تو آلوده است که این بدبختی و این ناتوانی را برای این مرد و من به وجود آورده و به این عاشق ره نکردی و حالا هم عاشق معیوس از و مید را میرنجانی و می, و زج می دهی. بعد از سخنان ملکه من در کمان خشم و غضب فریاد کردم بلی. من این حیولای زشت را گوشمالی دادم و حقش را کف دستش گذاشتم بایستی همین عمل را با تو هم میکردم و پشیمانم که چرا چنین نکردم تو از خوبی من سو استفاده کردی همین که این کلمات را گفتم شمشیرم را برداشتم و خواستم به سوی او حمله کنم که او را به سزای بدکردارش برسانم که ناگاه نگاه خیره و لبخند تنامیز به من انداخ. و کلمات عجیب و غریبی برشمرد که من از آنها چیزی نفهمیدم و بعد از آن گفت من تو را جادو میکنم که از قسمت کمر به پایین به صورت سنگ مرمر شوی و بلافاصله من هم به همین وضعی که مشاهده میکنید درآمدم در واقع در مردهای هستم میان زندگان و زندهای هستم در بین مردگان شاه جوان شرح حال خود را برای سلطان دنبال کرد و گفت با ترسمی که این زن که نام ملکه روی او گذاشت در مورد من به کار برد و مرا به این شکل درآورد و بعدا با افسان ترسم دیگر مرا به این تالار منتقل کرد پایتخت کشورم را ویران کرد شهری که آباد و پر جمعیت بود و از لحاظ تجاری رونق فراوان داشت خانه های مردم و بازارها را خراب کرد و به جای آن این آمقی را پدید آورد و ماهی های رنگارنگ را در آن به وجود آورد و اطراف آبگیر را به صورت مزرعه و بیابان تبدیل کرد ماهیهای رنگی چهارگانه نمودار مردم این شهر است که به چهار گروه تقسیم می شدند و هر گروه نمایانگر نوعی مذهب بوده است که هر کدام در منطقه خود زندگی می کردند رنگ سفید علامت مذهبی گروه مسلمانان و رنگ سواغ نشانه گروهی که آتش را مورد احترام قرار می دادند رنگ آبی علامت گروه مسیحیان و بالاخره رنگ زرد علامت گروه یهودیان بوده است. چهار سپه کوچک نمودار چهار جزیره که این کشور و نام این کشور را تشکیل می داد. این توضیحاتی که دادم اطلاعاتی بود که این ساهری جادوگر به من گفت و خشم خود را نسبت به من با زیر و زبر کردن و تبدیل کردن کشورم به وضعی که او خواسته است تسکین بخشد. ولی مطلب به همینجا خط نمی شود. او علاوه بر این دیگرگونی و ویرانی که برای کشور و ملت من به وجود آورد و خود مرا هم به این صورت که انسان ناقص و ناتوانی هستم در آورد تازه هر روز اینجا می و با تازیانی چرم گاف میش یک صد ضربه به گردن و قسمت بالای بدن من که حالت سنگی ندارد می زند و وقتی خون تمام ناحیه بدن و گردنم را فرا میگیرد آن وقت با پارچه زبر و ناهمواری که از پشم سخت بز می باشد روی آن ناحیه مالش می‌دهد و دردناکترین و جراحت را در گردن و بدنم به وجود می‌آورد. بعد از آن این لباس گشود بلند زنانه را که مشاهده می‌کنید به نشانه توهین و بی احترامی روی بدنم می‌اندازد. سخنان شاه جوان که به اینجا رسید شروع به گریستن کرد. دل سلطان برای بدبختی او سوخت ولی از شدت تأثر یارای تسلی دادن به او را نداشت. شاه جوان در حالی که عشق از چشمانش به صورتش می‌گالتید سر را رو به آسمان بلند کرد و گفت ای پروردگار توانا تو خود شاهدی که چه زجرها کشیدم خودت داوری کن من خود را به تو تسلیم می‌کنم کنم، ای سبب ساز و قادر مطلق من همه ها و سختی‌ها را با بردباری بر هموار می‌کنم زیرا حتما خواست تو بوده است که چنین باشد پس من هم باید آن را بپذیرم حال که چنین است از تو می‌خواهم در پایان کار پاداش نیک به من اتفاق کنی سلطان که سخت تحت تأثیر سخنان چکانده‌نده شاه جوان قرار گرفته بود گفت به قدی کافی گریه کرده ای و من هم تصور نمیکنم کسی بیش از من دلش برای تو سوخته باشد من تصمیم گرفتم به هر قیمتی باشد انتقام تو را از این زنه کار بگیرم فقط به من بگو این کار و مشوق او را کجا میتوانم پیدا کنم؟ شاه جوان پاسخ داد همانطور دا که گفتم مشوق این زن ساهری در قصر عزاداری در درون گوری قرار دارد که به شکل گمد مدوری است قصر عزاداری در گوشه ای از در بزرگ ورودی به این قصر متصل میشود اما آن ساحره دشقیم هر روز صبح پیش از طلوع آفتاب به سراغ من میآید و یکصد ضربه تازیانه به من میزند و مرا غرق در خون می کند پس از آن ای را که خودش درست کرده برای مشوق خود می‌برد و آن را هر روز به او می‌خورانَد تا زنده بماند. من که قادر به دفاع از خود نیستم، مجبورم این انتقام خونین را با درد و جراحت تحمل کنم. و این زن ساحره در لحظه‌ای که در نزد معشوق به سر می‌برد، از سکوت و خاموشی او شک و شکایت می‌کند. ولی از روزی که مشوق او مجروح و بهتر گفته باشم، مرده نیمهجانی شده است روزانه به دیدن او و معاشقه یک طرفه با او میرود. سلطان پس از شنیدن این سرگذشته دردناک آهی کشید و گفت کسی را تا کنون شناسم که سنیویشتی به این تلخی و ناکامی داشته باشد و اگر مورخین شرح داستان تو را بنویسند از هر سرگذشته غم خواهد شد بنابراین بر تو واجب است که انتقام خود را از این جنایت جنایتکار بگیری و هیچ نیرویی مانع از انتقامگیری من نخواهد گردید. در این هنگام سلطان خود را به شاه جوان معرفی کرد و علت آمدن خود را به این منطقه برای او تعریف کرد. آنگاه هر دو عهد کردند که تا پایان کار با یکدیگر متحد باشند و قرار گذاشتند ای را که کشیدند فردا به موقع اجرا گذارند. سلطان به استراحت پرداخت اما آن شاه جوان آن شب هم مانند سایر شبها. از زمانی که نیمی از بدن او سنگ شده بود خوابش نبرد و تا بامداد بیدار بود و هزاران فکر گوناگون از مغزش میگذشت. اما روزنه امید در افاق تاریک زندگی خود احساس میکرد. صبح روز بعد سلطان خیلی زود بیدار شد و جامعه گشاد خود را که مزاحم دست و پای او بود در آورد و در گوشه‌ای پنهان ساخت سپس به قصر عزاداری وارد شد تالار بزرگ و زیبایی را دید که سطحاً شمع فضای آن را قربه در نور کرده و بوهای خوش از درون جبه های تلایی هوا را خوشبون کرده بودند. جبه ها کار اساتی دفن و همگی زرین و به نحوه منظمی ردیف در کنار هم قرار گرفته بودند. در میان تالار تخت مخصوص مشوق را دیر که روی آن دراز کشیده است. سلطان بدون معتنی شمشیر به دست به سراغ مشوق رفت و او را کشت و جسد او را در داخل چاهی که در حیات قصر بود انداخت. و خود به جای او روی تخت دراز کشید و شمشیرش را هم با خود همراه برد و آن را در زیر ملافه پنهان کرد تا نقشه خود را برای انتقام گرفتن از این ساهره ی عملی سازد <تصح> <تصح> تونی نکشید که زن ساحره وارد شد ابتدا به سوی شاه جوان رفت و با وحشیانه ترین و بیرحمان ترین او را تازیانه زد و آن بیچاره با نالب و التماس خود فضا و قمنگیز و پرماتم ساخت و زن ساحره هم بدون کمترین شفقتی او را زیر ضربات تازیانه قرق به خون کرد و آنقدر را تازیانه زد تا تعداد زربه ها به یکصد رسید. در همان حال زن ساحره می تو تا به مشوق من رحم نکردی چگونه انتظار رحم از من داری؟ پس از آنکه زن ساهره زربه های تازیانه را به یکصد رسانید همان پوست بزرگ که پشخواین و ناهموار داشت روی بدن مجروح او کشید؟ و فریاد شوهر را از شدت سوزش و جراحت به آسمان رسانید بعد از آن زن ساهر خود را نزدیک تخت خواب محشوق رسانید و گفت چرا از انتقام جوی من ناراحت می شوی؟ گمان می کنم انتقام جوی من از لطمه ای که این مرد کار به زندگی و تندرستی تو وارد کرده دردان نباشد تو نباید ناراحت شوی؟ زیرا من از کسی انتقام میگیرم که دل را به این روز انداخته و او را کاملا ناتوان ساخته. بلایی که این مرد بشتر تو آورده موجب شده است که من نتوانم شب و روز خواب راحتی داشته باشم. در این هنگام سلطان که میدید زن صاحره او را به جای مشروق تصور کرده، حالت کسی را به خود گرفت که تازه از خواب عمیقی برخاسته و با تقلید لهجه و زبان سیاه پوستان به سخن درآمد و گفت: هیچ نیروی به قدرت پروردگار توانا نیست. زن از شنیدن صدای مشوق از جای خود بلند شد. فریادی از شادی برابرده گفت ای خدای بزرگ آیا درست می فهمم که مشروخ عزیزم سخن می گوید و یا اینکه من خود را فرید می دهم آنگاه سلطان خطاب به زن ساهره گفت بدبخت بیچاره آیا تو خدا شایسته می دانی که من با تو سخن بگویم ملکه یا همون زن ساحره گفت بلایت به چرا اینگونه با من سخن می گویی سلطان به جای مشروخ گفت برای آن که وقتی تو میخواهی با نواختن ضربات تازیانه بر بدن شوهرت از او انتقام بگیری، ناله ها و فریادهای های او مانع از استراحت خواب من می شود. من باید مدت ها پیش حالم بهتر می شد، اما بیرحمی های تو بهبودی مرا عقب انداخت. از اینکه تو شوهرت را تلیس کردی چه سودی برای من دارد؟ علت خاموشی و حق نزدن من همین هاست و تو خود مسبب آن هستی؟ در این هنگام ملکه رو به مشروب کرد و گفت ای عزیز دل من هرچه به خواهی خواهم کرد آنکاری را خواهم کرد که تو را آرامش دهد و خوشنودی تو در آن باشد. آیا میل داری که او را به حالت قبلی درآورم؟ سلطان پاسخ داد بله هر چه زودتر این کار را بکن تا من بیش از این جوچار ناراحتی نباشم ملکه فورا از قصر عزاداری خارج شد ظرفی را پر از آب کرد و وردی خواند و بر آن ظرف دمید آب شروع به جوشیدن کرد. و بخار از روی آن بر برمیخواست درست مثل آن که بس سر آتش گذاشته باشد بلا فاصله به قصری رفت که شاه جوان شوهرش در آنجا بود و آب را بر روی او پاشید در حالی که میگفت ای آفریدگار بزرگ در صورتی که این بنده از را از روز نخواست چنین نهی ای یا او را نخواسته ای به این حالت درآوری پس او را به حالت اصلی برگردان و چنانچه از اتدا به این شکل و یا بعدن او را به قذر خود گرفتار ساخته ای تغییری در وضع و حال او مده همین که سخنانش به پایان رسید شاه جوان به صورت اولیه در آمد و خدا را هزاران بار سپاس گفت بعد زن جادوگر به او فرمان داد تا هر چه زودتر آن قصر را ترک کند و دیگر هرگز به آنجا بر نگردد و چنانچه بازگردد مرگ او حتمی خواهد بود شاه جوان هم بدون آنکه سخنی گوید با سرعت قصر را ترک کرد و به نقطه دور دستی رفت و منتظر ماند تا سلطان خود را با موفقیت به پایان برساند. بعد از آزاد کردن شاه جوان از تلف زن جادوگر به نزد سلطان آمد و به او گفت ای اشق زیبای من فرمان تو را اجرا کردم اینک دیگر مانعی برای وسال ما وجود ندارد. کام دلی که مدت از آن محروم بوده هم باید جبرن نمایی. سلطان با همان لحجهی که سیاهان صحبت می‌کنند گفت آنچه تو انجام دادی کافی برای بازگشت من به حال عادی نیست و من هنگامی از این ناراحتی رها خواهم شد که تو ریشه اصلی ناراحتی‌ها را قطع کنی. زن با شنیدن گفته‌ی مشوق بلافاصله سؤال کرد: ریشه کدام است؟ ای مشوق زیبای من بگو ریشه چیست تا آن را به خاطر عشق تو از بیخوبون برکنم. سلطان گفت: منظور از ریشه همون شهر و اهالی و مردم آن هستند که تو آنها را سرگردان کردی. و به صورت ماهی های در آن آبگیر شناور ساختی که از آن زمان تا کنون سرگردان و بلا تکلیف هستند و شهر رو نیز به صورت آبگیر در اهالی شهر که به صورت ماهی در آمدند شب و روز سر خود را از آب در می آوردند و فریاد انتقام علیه من سر می دهند. علت واقعی که من به حودی نمی آبم همین است برو و هرچ زودتر شهر را به جای خود برگردان، و احالی آن را هم به حال اولیشان تبدیل کن تا من به فاصله به حالت سلامت برگردم و بتوانم تو را به کام دل برسانم. جادوگر دلش لبریز از شادی شد و از خوشحالی فریادی کشید و گفت همکنون سلامتی تو را باز میگردانم زیرا همین لحظه همه خواسته های تو را اجابت میکنم. جادوگر کنار آب گیر رفم از آب آن را با مشت خود بلند کرد و دوباره در استخریخ و وردی هم خواند همین که زن جادوگر از خواندن وردها فارغ شد استخ تبدیل به همان شهر آباد و پرجمعیت و پر سابق شد و ماهیها ماهی‌ها هم صورت همان مردم و اهالی شهر در آمدند و به طور کلی شهر حالت قدی را به خود گرفت و دکه ها و خانه ها از سکنه پر شد و درست به شکلی در آمد که قبل از تلس و جادوی ملک بود همراهان و ملازمان سلطان هم در یک چشم هم زدن خود را در میان شهر آباد و پر رونق و پرجمعیتی دیدند از سوی دیگر وقتی زن ساهر این کارها را سر سامان داد و به اصطلاح های را جامعه عمل پوشانید دوشت ها به هرچه بیشتر به سوی مشروق زیبای سیاه خود رفت که در واقع به جای او سلطان خود را مشروق قلم داد کرده بود و به خوشحالی به سیاه گفت ای یار نازنین و عزیز من آنچرا که گفتی انجام دادم. اینک وقت آن است که از جای خود برخیزی و با من سخن از عشق گویی، دستت را به دست من ده تا تو را از جای خود بلند کنم. سلطان در کاسه خود گفت: "قضیه جلوتر بیا." همین که زره جادوگر جلو آمد، سلطان ناگهان برخاست و قبل از آن که متوجه شود چه اتفاقی افتاده است، با یک دست کمر جادوگر را گرفت و با دست دیگر شمشیر را بالا برد و با شدت فرو آورد. و زن ساحره را بدون این کرد و هر نیمی از آن به یک سو افتاد پس از کشتن زن جادوگر، سلطان از قصر عزاداری بیرون آمد و به جستجوی شاه جزایر سیاه یعنی همان شاه جوان پرداخت و او را دید که بیستبرانه در انتظار است هر دو یک دیگر را در آغوش کشیدند و خوشحالی کردند و سلطان به شاه جوان گفت دیگر راحت شدی دشمن تو را کشتم و جنازه اش در قصر عزاداری است شاه جوان گفت من نمیدانم چگونه از سلطان بزرگوار فدا فداکاری چون شما تشکر کنم من زندگی و آزادی خود را ammunition شاه ممذ و محبت شما هستم از خداوند میخواهم می‌خواهم که همواره تندرست و شادکام باشید و از گزند روزگار در امان من قدر زحمت شما را میدانم و تا آخر عمر آماده گذاری هستم آنگاه سلطان گفت من هم امیدوارم که شما در نهایت آسودگی در پایتخت کشور خودتان زندگی کنید ولی باید به کشور من بیایید که خیلی نزدیک به دیار شماست و بیش از شش 7 ساعت راندن با عصد فاصله ندارد. شما مورد استقبال مردم من خواهید بود و همان احترامی را که در کشور خودتان دارید در کشور من هم خواهید داشت. شاه دوان پاسخ داد که فاصله کشور من با کشور شما یک سال راه هست و شما این فاصله را در زمانی پیموده اید که سرزمین من در تحت تفسیری جادو و تلس بوده،